بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب المزاح حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم رضي الله عنها فقال يا أنجشه رويدا سوقك بالقوارير قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه قوله سوقك بالقوارير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلیات و سلام و علی اشرف الانبیا و سید المسنین و علی و صحابی اجمعین اما بعد صد و افده ادمین باب از ابواب صحیح اد مفرد گفته بخاری باب المزح مزاح یعنی شوخی اون چیزی که در مورد شوخی اومده نه مسخره مسخره سحزا تمسخره ریشخنده ولی مزاح شوخیه حالا شوخی, شوخی جایی با سخن گفتن جایی با با فعل با رفتار 199مین حدیث حدیث انس بن مالک رضی الله عنه میگه یات ات نبی صلی الله علیه و علی بعض نسائه و معه اون ام سلیم رسول الله صلی الله علیه و سلم ناز همسرانش و همراه همسرانش ام سلیم من بود ام مسلم کی مادر انس بن مالک یکی از محارم رسول الله صلی الله علیه و سلم که بعضم دوباره خواهد آمد قبلا گفته شده بعضم خواهیم گفت چون رسول الله صلی الله و سلم چندین بار رفتن در منزل ام سلیم نماز هم خوندن این از دقت انس میخواد اون واقعه را دقیق بگه کی کجا و چطور رخ داده در روایت دیگر اومده ان البراء ابن مالک كان یحدو بالرجال براب ابن مالک برادر انا ابن مالکه قبرش در ششتر ایرانه در اهواز در خوزستان براب ابن مالک نجف شده بعد از حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم هر صحابی یک جوی رفته برای نشر دین و دعوت اینا مدینه را ترک کردن به خاطر نشر علم و دین همیت علم براب ابن مالک رضی الله عنه در غزوه ها در سفرها همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم شعر می به روش حدا روشی که الان همین حدیث خونده شد حدا داریم و تغنی داریم آواز داریم انواع آواز داریم ما ما اول باید فرق بذاریم بین آهنگ و آواز آهنگ صداهایی که از ادوات موسیقی بیرون آواز आवाज صداهایی که انسان می سازه با صدای خودش این آوازخونی خونی درجات داره یک درجه غنا هست تغنی آواز به سبک موسیقی گاهی مدش طولانی بکنه گاهی مدش کوتاه بکنه یک ریتم نیست حدا یک ریتمه غنا بعضی از علما گفتن حرام بعضی علما گفتن مکروه حداقلش مکروهه आवाज حد آواز خوانی مجرد آواز کنی چنانچه در تفسیر سوره لقمان میاد که در بحث لهو و که بعضی از اصحاب یاران گفتن از جمله لهو و آوازخونیه آواز خوانی اون آواز که گفتم با وزهای مختلفی باشه از اون تقلیدی که از ادوات موسیقی میکنن اما هدا نه یک ریت خوندن با صوت نه به شکل ترغنی گفتم فرق بین ترغنی و هدا گفت و کان انجشه یحدو بالنساء انجشه صحابی رسول الله صلی الله و سلم از اهل حبشه هست حبشی بود کنیاشم هم ابو ماریه بود و کان حسن الصوت صداش خیلی زیبا بود فقال النبي صلی الله عليه و سلم رسول الله صلی میگه یا انجشه اي انجشه رويدا رويدا كلمة رويدا يعني مهلا رفقا يعني رحمي بحال انزانا وكور رحمي بحال انها وكور رويدا يواش يواش كم كم يا انجشه رويدا سوقك بالقوارير چون شطرارا سوق ميدادن يعني انها را در اون مسير وخندن اون آوازها و اون حدا تشویق براها رفتن میکادن يعني اون اواز خونی اون هدای اون افراد در اون قافله سبب میشد که اون شترها خسته شه شتر بهتر و راحتتر راه بره بعضی از صداهای این چنیینن حتی حیوانم در مقابل اون صدا اصلا من نشون میده اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلام انجشه این صحابی که اهل حبشه بود میگه که رویدن یعنی مثلا یعنی یک لطفی و رفقی در حق این قواریر داشته باش در این سفری که داره این چنیینن شترها را همراهی میکنی سوقک بالقواریر در این راهی که مسیری که این شطوران این زنه را رحم میکنن رحم به حال اونها داشته باشه قال ابو قلابه فتکلم النبي سوسن بكلمه ابو قلابه صحابی رسول الله صلی الله علیه و رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه وسلم یک حرفی را اینجا زد یک را گفت که اگر ما بگیم شما عیب میشمارید شمارید لعبتموها علیه قوله قبل بالقوارير این سخنش سیاق در اصل مثل رانندگی ماشین کسی که قیادت و فرمان الا حیوان میخواد سواری ان کات عقاب ما باشه کشتی باشه رو بده میگیره قیادته راندن ماشین رانندگی راندن شطور راندن کشتی اون سوق دادن و مسیرات ی نمودن با اون حیوان میشه سوق خب اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلام میگه که ای انجاشه لطفی بکن در حق اون قواریر زنها را تشبیه میکنه به قاروره از باب مزاح والله از باب شوخی رحم به حال این ذرا بکن شیشه الان میشکنن خب برداشت های علما متفاوت بوده اینجا در حدیث گفته شده تشبیه شده اینجا زنا به شیشه حالا این حال اتفاقه قواریر قاروره یعنی شیشه یک ظرف شیشه‌ای چرا زن تشبیه شده به یک شیشه چون زن زود تحت تاثیر قرار میگیره زود جوگیر میشه زود اون آواز اونها را رخ رقص میاره زن زود تأثیر پذیره بعضی ها با مشروب مست میشن بعضی ها هم با سخن زیبا مست میشن حرف سرشون رو میاره خب یک توجیهیه در بحث این حدیث این که این هنجشه به حال این زنها بکنین حرف این که تو داریم میخونین این ها شیشه هنها زود میشکنن زود تحت تأثیر قرار میگیرن یعنی این یک وجهش وجه دیگر که اون بیشتر ترجیح داده اینی که رحمی به حال اون زنا بکن که این شوترا میرقصه با این حرفت این شوترا سریعتر میرن رحمی به حال اون زنا بکن زن بالایش شوترا یواش یواش با این سرعت میخواد شوتور بره این زنا میفتن از بالا میشکنن دست پاشو خورد میشه زنها استقامت و استحکام مرد رو ندارن نمیتونن خودشون سفت و محکم بالای شوتور نگه دارن بیفتن دست پاشو خورد شده این یک وجه دیگری که علما در شرح این حدیث گفتن که گفتن این را بیشتر علماء ترجیح دادن به هر حال اون چیزی که در این حدیث بجه شاهد امام بخاری بوده بحث تشبیه زنا هست به شیشه زنا مثل شیشان چه از لحاظ حسی چه از لحاظ بعدوی از لحاظ حسی کشتی باشون بگیرید دست پای خودشون خورد میشه مدت مرتب قویتن الا اینکه اون زنه دیگه خیلی هورمونی چیزی استفاده کرده باشه از لحاظ معنوی یک مرد نک شعر صد تا حرف های قشنگ و زیبا هم بهش بگی سرش نمیاره نکنینیه کامین گلم براش بدی هیچی تاثیر رو چشی نمیذاره. عاطف توش مرده ولی یک زن نه یک شاخ گلم سرش میاره از ت توی که را ات رو میگه بعضی از زننا پول بهش رو شاید بدی یک میلیون پول بدی یک شاخ گل بدی. اون گل براش رو زیبا ترره گل به موب بود. شارم ده هزار تا بیشتر نخریده باشه. این یک میلیون تو اصلا اینین خیالش نیستن ایننگا که نه انگار. اینجا هست که رسول الله صلی الله علیه حتی از لحاظ معنا زنها مثل شیشه. شیشه رو باید بدونی چطوری باهاش تعامل بکنید. دلش رو نشکن زندگی بکن همیشه دلش رو خوشگو. کولم نداری گل بخری بیش بگو تو گلی. برات گل میشه، شکوفا میشه. دلش خوش میشه. جدی دارم میگم هنر زندگی نشکنش. نشکنش تا بتونی زندگی بکنی. شکونdish زندگی بکنید. رفقا بالخواریر. نعم شیخ. اول المؤلف رحمه الله حدثنا عبد الله ابن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن ابيه او سعيد عن ابي هرائرة رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تداعبنا قال اني لا اقول إلا حقا تبیست من حدیث حدیث بحرائر رضي الله عنه وغفر الله له لأمه کمی قیاد صحبه رسول الله صلی اللہ صلی اللہ وسلم فرمودن يا رسول إنك تداعبنا ومشو خیمی شیوه‌ی رسول الله متفاوت بود مثلا به عنوان مثال توی بازاری یکی از اصحاب رمینه چشماشو از پشت می‌گیره از عقب دست رو چشمش میذاره بعد میگه من یشتری دریم من عبد این برده رو کی از من می‌خره منظور رسولان عبد بود بنده بود نه برده گفت که یا رسول الله تجدني الا کاسدا من کاسدم کی مرا از تو می‌خره کی برای مرا می‌خره هیچ کس از بس که زشتند یک خریدار ندارم چون در به شما اومده ان صحابی خوش‌چهره نبود بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم بهش میگه بل انت عند الله غیران ناز الله کرم بهای ناز الله مهم اینه که ناز الله چی باشی؟ خلق الله بخاطر ارزش بپندارن ناچیز به خلقن خلقا به دستشون جدا بهش نه مهم اینه که ناز الله چی باشی؟ این از شوخی‌های رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام زنی چنین نزد رسول الله الله میاد بعد <تصالح> رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که پیر زن وارد بهش نمیشه. پیر زده سرشو پایین میندازه گریم میکنه جهان نمیشود. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که وارد بهش نمیشه. صداش میزنه رسول میگه صلی الله علیه و سلم میگه صداش میزنیم. زن بعد میگه خب انسان وقتی که وارد بهش میشه جوان وارد بهش میشه پیر زن وارد بهش نمیشه. نه یعنی پیر نیست وقتی که وارد بهش میشه. این از شوخی های رسول الله صلی الله علیه و که میگه که انی لا أقول الا حق ما نما شوخی بکنم شوخی به حق میکنم به دروغ نه ما اجازه نداریم که به دروغ شوخی بکنیم ما اجازه نداریم که به دروغ شوخی بکنیم رسول الله صلی الله علیه و سلام میفرمایان ویل للذی یحدث بالحديث لیضحک به القوم فیکلب ویل له ویل له, له وای بر اون کسی که حرف سخنی رو بگه به دروغ تا مردم بخندن وای برو وای برو. خصن اونایی که جک میگن بر سر لرا بر سر ترک ها، بر سر مینابی ها رودونی ها دروغ میگه که مردم بخندن. و این نه و این نه. اینها هست که سبب میشه و خوبت برادری پایدار بشه و سوار بشه. و یک مینابی یک رودونی این بیاد اونها رو به مسخره بگیره این بیاد اینها رو مسخره به با دروغ خصومته. از بین میره یا خصومت قوی تر میشه بغض و کینه دوتا دو قم با هم دیگه بدتر و سختتر و بیشتر میشه نکمتر کمتر شرع هر اون چیزی که سبب بغض و کینه و کدورت بشه تو رو من کرده میخوای دل خوش کنی دل تو خنک کنی با چهار تا مسخره کردن و با چهار تا دروغ گفتن خیر حق نداری با چیزی که حرام دل خوش کنی مشروب هم دلتو خوش میکنه حق داری انسان از خودش بی خود میکنه حق داری نه حق نداری دروغ هم همینطور حق نداری حالا بدتر از همه این که اون مزاح و شوخی و اون ریشخندی در قالب دین باشه الله جل و علا وقتی که اون منافقین در جنگ حنین اومدن غنایم را به مسخره گرفتن وقتی که غنیمت را گرفتن مسلمین اومدن خندیدن به شکم مسلمان ها این ها دیگه شکم پرور شدن دارن با مال مفت شکم پر میکنن مال غنیمت شعیره رو مسخره گرفتن الله جل شانه آیات نازل میکنه قل لا تعتذروا فوزنا یرید قد کفرتم بعد ایمانکم کافر شدید بعد از ایمانتون با چی با یک ریش با یک مسخره با یک شعیره اونم غنیمت چه ملائکه رو بخوای به ریش بگیری چه میخواد پیامبران رو به ریش بگیری میگیری چه بخوای جهنم چه بخوای بهش اینها کفره باید بغض کسانی داشته باشی که دین را به مسخره میگیرن نه در جلساتش بشینی نه اینکه بشنوی و انکار نکنی وظیفه‌ت شخصی دیدی که دین را بریش میگیره می‌گیره که هشدار بدی تذکر بدی اصل اون حقی که الله به داره و حقی که الله از دینش به و گذاشته دین و نصیحه الدین و نصیحه قالوا لما يا رسول الله دین نصیحته سب بار تکرار می‌کنه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه لله نصحته لله لله و لکتابه و لرسوله و لایمه المسلمین و حقه الله جزاه شته بجardinت أصحقه هو خودش قدرها من الله جل وعلا شانه در القرآن راتكاس قسيم موسى يادم يكون ميجي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة موسى عليه السلام بقومش ميجي شما قابرا زبحه كن يبرينك قاتل مشاكس بشه قالوا أتخذناه زوا ما ربي شو خي جريفيتي بيوم قابو كوشن كقابو بشه قال أعوذ بالله اکنونه منل جاهلی الله پنا می بر از این که جز جاهلی باشم پس مسخره با شوخی کردن وقتی که در قالب دین بیاد از جهله قال عود بالله پناه بر مثاحبه الله از این که من از جاهلی باشم که بیام دین خودم رو بریش هم بگیرم. ما شوخی میتونیم بکنیم در امر دنیابیمون اما دین نه درش دیگه شوخی نداریم طلاق یک مسئله شرعیه شوخیش هم جده حدیثسه جدشده شوخیش هم شوخی بکنیم واقع میشه دینه. داردين مشوخي نادرين قال المؤلف رحمه الله حدثنا صدقة قال أخبرنا معتمراً حبيب أبي محمد عم بكرب بن عبد الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يت badgesون بالبطيخ فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال يسويكمين حديث هذا حديث صحيح مفرد حديث بكرب بن عبد الله رضي الله عنه كميجيات كان أصحاب النبي صلى الله يتبادحون بالبطيخ. صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم بترفهام ديار هندوانة يعني پوست هندوانة پوست چرا نعمة ربحت كادا كفرانة الله صلى الله عليه وسلم يفَرِمِ إذا سقطت لقمة أو إذا سقطت لقمة أحدكم فليَمُطْعَنُهُ الأذى ولی اکلها ولی دعها لشیطان اگر یک لغمی از دهن شما افتاد دست شما افتاد روی زمین برداره و خاک رو ازش پاک بکنه و بعد اون لقمه رو بخوره نظر برای شیطان اون نعمت را حدر نده اون نعمت را ناچیز نشوره متاسفانه از اسرافمون این مسلمان ها خوصا در اونجا هایی که در ناز و نعمت بسرمینه خوصا سر عروسی ها از اون برنج‌هایی که حیف و مل میشه از اون ها و خورش‌ها و اسراف و تبذیری که میشه الله رحم بکنه به حال اون شخصی که این معصیت رو از باب جهل انجام میده جهله این جهالت نسبت به دینه نعمت‌هایی هست که الله گذاشته برای ما که سپاس او را به جا بیاریم اون‌ها را محترم بشماریم نعمت محترمه برنج اضافه است در منزل کسی نیست که بهش بدی فقیر یتیمی حیبونی هم نیست شعرها متمدل شدن تو یک پلاستیکی تو یه ظرفی بذار تو یخچالی تو یک جایی جمع شد با هم دیگه بعد از چند روزی دیگه تو دریا بریزم ها بخورن یا به یه جایی ببر ها بخورن یا تو یک پلاسیکی کنار اون زباله بذار شاید کسی برای حیون خودش برداره و الی آخر اما اینکه به راحتی انسان غذاها را همراه آشغالها تو آشغال دونی بندازه نکفرانه نعمته. نعمت باید معزز بشه باید عزیز بشه نعمت باید ایسا در مقابلش قد شناس بشه این قد نشناسیه. بس اصحاب رسول الله صلی الله علیه و شوخی میکردن با هندوانه ولی خب پوسی هندوانه به طرف هم دیگه پرت میکردن مینداختن فیدکانت الحقائق کانو هم رجال حقیقت میومد جهاد و بحث غیرت میومد اونها رو مرد میدیدید واقعا مرد بودن حالا چه میگم در بحث خانواده هست و همسره در مقابل گناه و معصیت م آدمه شلوغی نبودن در حقیقت. مثل الان نیست. زنش با کمال بد حجابی و هزار رنگ آرائش بیرون اومده. دخترش هم همینطور. مرد نیست. غیرتی نداره. این مزموم در شهر. ما مسئولیم کلوکم راه هم و کلوکم مسئول عن رعیت. ما مسئولیم در مقابل دخترانمون، همسرانمون، خواهرانمون. قال مؤلف رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فقال أنا حاملك على ولدناقه قال يا رسول الله وما أصنع بولدناقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق ديوستو حديث أزا حديث سهيدا مفراد حديث انس بن مالك رضي الله عنه كيميات من صلى الله عليه وسلم جاء رجل النبي صلى وسلم يستحمله تقاضى صلى الله عليه وسلم, الله الله عليه وسلم. الشتوري بيش بدك سوار بيش فقال صلى الله عليه وسلم رسول الله أنا انا حاملك على ولد ناقه مامترو بچه چطوري سوار بيكولا. قال يا رسول الله وما اسنعه ولد ناقه بچه چطور جو كارو ای صحابی چطوری فهمید؟ اصلاً مسخره گفت بهش رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفت که تو را بچه شطوری هم میکنه گفت بچه شطور رو چکار بخواب بگم یا رسول الله؟ فقال الله صلی الله علیه و هل وهل تل تلد الإبل نوخ؟ میگه جز اینه که شطوران را شطوران ماده به دنیا میارن. مگرد جز اینه. بچه شطور خب مادرش شطور ماده ای بوده دیگه. خب این بچه بزرگ میشه. جز اینه که شطوران اون بچه شطور را ماده به دنیا میارن. تو را بر بچه شطوری هم می کنم، گفتم خب این بچه بزرگ شده این از مزاح رسول الله صلی الله علیه و, سلم و از ادب و تعامل و رفتار و خوش رفتاریش با اصحاب یارانش عادی بود خودشو بالا نمی دید متواضع بود همدم اونها بود یار اونها بود بیاد بداره بهمون میده خودمو رو بالا نبینیم مغرور نبینیم متکبر نشیم تو التواضع یادمون میده یعنی احادیث مجرد این نیست که شما بخورید و بگید که مثلا اینجا رسول الله صلی اللہ علیه این چینین شوخی کردن نه ازش تواضع یاد بگیر ازش حسن هم صحبتی یاد بگیر حسن هم جواری حسن تعامل یاد بگیر ازش این یاد بگیر برخورد نیک، رفتار نیک، جدی باش یک سری جاها هست انسان نیاز به مزاح و نیاز به شوخی داره نه هم شیخ قائل مؤلف رحمه الله باب المزاح معصبی. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو التياح قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا ابا عمير ما فعل النغير سد 13 باب از ابواب صحيح الدمرد كم طولاني هست درست این حدیث خیلی زیاده ان شاء که بتونید در 20 ثقه تمامش حدیث کوتاهیه ولی درس او عبارتاتوش زیاده. سادویشدهمین باب گفته ایمان بخاری رحمه الله باب المزاح معصبی شو که کدوم باب بچه؟ و یک نوجوان و یک جوانی. حالا اونجا صحابی بود بزرگ بود. الی خب اینجا یک بچهه. رضو الله صل الله عليه وسلم با هم بچه هم شو کی میکند؟ ناس توزع شر الله صل الله عليه وسلم. دیویست سومین حدیث حدیث آناس ابن مالک رضی الله عنه که میگیاد این کانه نبیه صل الله علیه وسلم نهیو خالیتونه. و اول ابتدا بحث مخالته و بحث همجواری و معاشرت رو یاد میکنه همیشه با ما بود یعنی خودشو بالاتر و بهتر از ما و برتر از ما نمیدید با ما بود با وجود که انس به عنوان یک خادم مادرش رو برده بود تحویل رسول الله صلی الله علیه و داده بود ولی رسول الله ما رو خادم شوخی میکرد کرد می حتی یقول لاخ لي صغير برادر کوچکتر از مادرش برادر کوچکتر از انس برادری از مادرش یه اینجا رسول الله صلی الله علیه و گذاشته بود ابوعمر میگه یا ابا عمر ما فعلا نغیر نغیر نغير درس بلبله گنجشکه از نغر میاد اون گنجشکی که منقارش قرمز رنگه اولین درسی که ما میگیریم دلداریه آدم یه چیز عزیزی رو دست میده میخواد پرنده باشه میخواد کلید گم بکنه میخواد کسیش فوت بشه نیاز به تسلیت داره دلداری داره درسته کسیش فوت شده ان الله و ان الیه راجعون و تو هم وظیفه که بری به تسلیتش بگی ان ما اخذ نهی که اون بچه رو سرکوف بزنی یا اون برادرت اون خواهرت سرکوف بزنید چرا گم کردی چی شد چی نشد حالا چی در مقابل گفتم از از زادن کسی چه از زادن مالی یا چیزی از دنیا جایی که ما مخسر نیستیم نیاز به دلداری داریم تصادف کرده طرف به جایی که بهش بی که مهم اینه که تنت سالم باشه مال دنیا است میره میاد ها تو مازم نبودی تو سرعت رفتی تو فلان کردی الان اینجا وقتش نیست خودش الان دلتنگ هست دلتنگ ترش نکن. سطح میکنه می میره من خودم دیدم دوتا خرگوش یکی از خرگوش ها گم شد. اون خرگوش رفیقش بود مرد شم تو حیاطت بازی میکردم چند ساعتی ننگذشت مرد. حیونه حیون حیون حس داره. دقمرگ شد دیدیدم شاید پیش اومده پرنده تو قفس نگه میداری. یکی شو که بی میبیره اون یکی هم دقمرگ میشه می میره. انسانم انسان هم همینطوره شاید زیر چشمه تو عزیز نیست اون فرنده. ولی اون بچهیه که دل به اون پرندهش بسته یا ما حیون عزیزه براش. شو قد بشه بشو دارم میگم این چیز طبیعیه و این ارتباطی هست که الله گذاشته از لحاظ عاطفی بین ما مخلوقات خودش از جمله درس های این حدیث برای اینکه اون بچه بزرگ بار بیاد با لقب و کنیه صداش بزنیم اسمشو نبرد گفت يا ابا عمر به اسم یک مرد صدا تو مردی بچه نیستی نه این که اون بچه رو هی تو تو بچه ای حرف نزن تو بچه ای اینجا حرف نزن برو بیرون اینجا جای بچه نیست نه داشت الله سر اسم شخصیت میداد. حتی اون بچه بچه نداره. او را باکونیه. یعنی با خطاب به بزرگسالان صدا میزد. یا آباعمر. خب با بزرگسالی خطاب کردن. نشون یه چیه؟ اینکه اون شخص بخوشه عزت داشته باشه. اون احساس بکنه که شخصیتی برای خودش داره که اون طرف مقابل داره این صداش صدایش میزنه. و چون بچه ای نداره ما نمیتونیم بگیم که لا کسی بهش بگه ابو فلانی پس میشه دروغ نه. امون من عایشه بچه نداره رسول میگه الله صلی میگه بچه ندارم یک کنیه بره من انتخاب کن اگر خدا بهم بچه داد مثلا اون بچه اولم رو اسمش فلانی بذارم رسم در در بین عربا بوده و در بین امت های دیگه یا لقب میدادم به طرف و یا اینکه با کنیه صداش میزنه نه با اسم حسین الله شخصی که بزرگه شخصی صداش بزنین جاسم بیا سالم بیا حامد بیا هاش علی و محمد ریششون سفید شده دیگه خودش که دیگه پیری برای خودش شده زشته این از احترام نیست باید بگه پدر فلانی پدر حامد پدر محمد این آداب معاشرته باید یاد بگیریم رسول الله ص اصلا با بچه‌ش مراعات می‌کرد دیگه چه برسه با بزرگسالش ما در تعاملمون این یاد بگیریم این چندمین درس بود سومین چهارمین جایز بودن شوخی کردن چون شو رسول الله صلی الله علیه و اینجا از باب شوخی وارد شد چی شد اون بچه گنجشکه یا ابو چی شد و اون نغر که گنجشک رو تصغیرش کرد چیزی نبود اونو غیری بیشتر از بچه گنجشکی بود ایده دلتو تنگ نکو بعضی از اسماء درسته که بشکنیش مثلا رسول الله صلی الله اسم امنون عایشه رو جایی از باب مداعبه صداش می یا عایش یا عایش بعضی از اسماء درسته ولی بعضی از نه شکسته نمیشن مثلا عبدالله عبدلو دیگه نهایت وقاحه و زشتیه این نهایت الزشتی و اسم رو تصغیرش میکنن اسم رو میکنن یعنی مثل محمده مثلا میگه حمید یا حمود مشکلی نیست چون با یک معنا میان احمد و محمود و محمد و حمد و اینا همه مشتقات هم دیگران. از اینکه که بشه کوچک بشه محمد حمید بگی مشکلی نیست ولی اینکه که از اون قاله معناش خارج بکنی حمد محمد حمد حمد چیه؟ نه معنا داره خصوصا بعضی از اسم ها را یهود از باب تقبیح نمیخواد اون نطق اون اسم مثل محمد صلی الله علیه و بر سر زبانشون بیارم میگم محمدو ممد. محمد نمیخوام بگم محمد نمیخوام بگم احمد اینا حرامه اینا درست نیست ولی که اگر اون محمد بشه حمید یا حمد مشکلی نیست چون از یک باب از یک باب مشتق شدن از اون درس ها ششمین درس درسته که یک بچه با خرگوش با گنجشکی بازی بکنه چه مشکلی هست بازی کردن بچه مشکلی نیست و این که ولی سرپرست بره براش گنجشکی بخره مشکلی هست نه الا اینکه بخواد حرام باشه طول سگ بخوای بخری نه حرامه اما گنجشکی داشته باشه دست بچه باشه باش بازی بکنه مشکلی نیست از لحاظ شرعی و همچنین این که اون حیوان بالاخره وقتی که من می‌خرم برای اون بچه‌م خب برای اینکه پرواز نکنه فرار نکنه بالشو بکند مثلا اون تیز بالشو تیز باله می که پرواز نکنه نره فرار نکنه. خب یکی از درس‌ها اینه که می‌تونی اون تیز باله رو بکنی یا اون باله رو قیچی بکنی که پرواز نکنه فرار نکنه دستشون. همچنین اینه که اون حیوانه رو حبس بکنه. نه میخواد پرنده باشه، میخواد خرگوش باشه. جواز حبس حیوانه درص. اگه درس نبود این رسول الله صلی الله علیه و آله این کار می‌کردن بر ولیش که چرا این کارو کرده؟ این کار نکردن. بلکه رسول الله صلی الله علیه و آله از باب شوخی اومدن باهاش بازی کرده. از باب شوخی و مزاح اومدن با ابو عمر شریکت به تحصیلت و دلداری و سخن گفتن از درس ها در این حدیث اینی که سخن اگر مرتب بشه با یک ریتمی بیاد منعی توش نیست مثل شعر بسن هم قافیه باشه هم ردیف باشه مشکلی نیست مثل اینجا عمر و نغیر یک ریتمی داره برای خودش این زیبا سخن گفتن مادم که تکلف درش نیست اما اگر تکلف درش بیاد دیگه اون ممنوعه که رسولا سرسا منعش کرده از درس های این حدیث اونس گرفتن و اونس دادن به بچه هست اونس بگیری با بچه مثل یک دوست باش رفتار بکنی بچه دوستت باشه نه که بچه تو سری بهش بزنی درست نخونده بزنی تو سریش مشکاش نبشه بزنی تو سریش نه این بچه تو سری خوربار میاد از اون درس این حدیث حسن اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم و, و توازعش و به زیادت رفتن اقوامش اینجا مسلمه ما درى أبو عمر أسمح محارم رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى فيش سار ميزات وبيحسنا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم هالشيء كبعض العلماء ومدانا قفتن كجائزة كي يكملت بعيادات الزنا عجنبي بره إنسان عجنبي إن نبود ابن القاص ابن حجار يادني كنمي كأزهل حديثه أبو العباس أحمد ابن أبي أحمد الطبري معروف بابن القاص فقهي الشافعي فقهي بداس فوق هاي شافعية بعض يرى مجاز ممتاز که در ایران زیاد بودن چون این ابل بری، اهل تبرستان ایرانه میگه بعضی را که اومدن به این حدیث ایراد گرفتم الان این حدیث چی توش هست که الان محدثی روایت کردن با این صدد متصل در صحیحین در بخاری و مسلمه یا ابو عمر ما فعلا خب که چی شد و سلا این هی بچه رودید گفت که بچه گنجه که چی شد الان ما چیز حدود دوازه تا فایده با درس داشتیم. درس رو بیشتره میگه من این حدیث را گوردم فوایدش رو یاد کردم با خاطر اینکه قدر ارزش این حدیث رو بدونید شما کمیش بیش میرید ولی درساش توش زیادن از اون اینه که حاکمه فرمان رواست ولی که همیت میده به درسان خودش میره سر بیم میزنه سر با ما میزنه مغرور نیست متکبر نیست با مردم خودش نشست و برخاست داره از حال روزشون با خبره میدونه گنجش که شده رفته تسهیلاتش داره میده گنجش که دیگه دیگرالا کسی اگر فوت میشد چی میشد؟ مردم رو از خودش میبینه درد مردم دردشه این حاکمه از جمله درس ها در این حدیث اومده که اصل این حدیث اینه که رسول الله صلی الله علیه و رفت خونه ام مسلم نماز خوند اونجا خب نماز درسه نافله با جماعت خونده بشه و از جمله درس ها این که یک عالمی یک بچه‌ای در مسجد در یک جایی حتی اگر قص یاد گرفته نداره یادش بده علم رو همرو کنه با خودش رفت خونه عمه خونه خونی داییش بچه‌هاش اومدن این حدیثی براشون بگه یک آیه ای براشون بکنه دعوت دعوت دادن را حقیر نشموره تو داعیه و دعوتگری رسول الله صلی الله علیه و آله یک دعوتگره داره یک بچه رو دعوت میده از جمله درس های این حدیث اینه که انسان چهره شناس باشه ما مکلفیم بفهمیم که کی این طرف ناراحته کی این طرف خوشحاله رسول الله صلی الله علیه و آله چهره ابو عمر رو میبینه تشخیص میده که این ناراحته الان به خاطر اون بچه گنجش خوشحال که نبود ناراحت بود تو استادیات دلوریش داره, داره می این چیز خصوصا بین زن و مرد در خونه و منزل خیلی مهمه بدونیم کی اون طرف مقابلمون خوشحاله چه حرفی باش بزنیم چه موقع ناراحته چه حرفی باهاش بزنیم از اون درسای این حدیث از لاز حدیثی اینکه اخبار آحاد قابل قبوله مقبوله از انس میشنوه رسول الله صلی الله علیه و سلم که ابو عمر را روحت قبتر کش اون خبر را قبول میکنه و بعد تسییت و دلداری میده به برادرش ابو عمر. حالا ما قبول اخبار آحاد زیاد داریم مثل آن خبر واحده. بر خلاف ها و عجرايان که خبر آحاد را قبول ندارند. از جمله درس های این حدیث اینی که میتونی اسب بازی برای بچه بخری با اون پوله هرچند که منفعت حسی نداره ولی خب معنوی تأثیری داره. مثل الان پرنده ای خریده غذا نیست که بخورد. لی بازیه. بچه نیازی به بازی داره. چنانچه ما ماده از یعقوب داریم که یک بهانه‌ای که میتراشن برادرای یوسف برای که یوسف رو از پدرشون بگیرن یوسف رو بده تا ما بریم بازیش بدیم بازی بکنه یارت و یلعب یا بیاد بازی بکنه بازی کردن مشروع هستن برای بچه اسباب بازی اسباب سرگرمی را برای آنها فراهم بکنه تا به گمروهی ندرن این از چیه از مقاصد شرع بچه رو نباد ول بکنی رهاش بکنی از جمله درس های این حدیث هر کسی به اندازه عقلش باید صحبت بکنه یک بچه است رسول الله صلی الله علیه و سلم در حد و حدود اون بچه داره صحبت میکنه اگر یک مردی بود مثل شما اگر کبوترش مرده بود یا پرندهش دیگه نیاز به تسلیت نداش شون عادیه یکی مرده تا دیگه هم میمیره هیچی این خیالش هم نیست شما هم 10 تا پرنده هم داشته باشید تو قفس نگهداریید بمیره تو مهم نیست ولی که اون بچه نه عزیزه به اندازه عقلش رسول الله صلی الله علیه و سلم باش صحبت میکنه. از جمله درس های این حدیث این که روایت به معنا درسته خصوصا این که ننس این, این واقعه را به نمونه های مختلفی برای ما روایت کردن، جای خلاصه و جای با معنا هم خلاصه کردن درسته و هم با معنا روایت کردن. 20 فایده ذکر کردیم همین 20 کافیه. ما بیش از این فوایده درسا از این حدیث برداشت کردند و مهمترین درسی که در این حدیث هست ممتن درسی که در این حدیث هست درس خوشبرخوردی خوشرفداری معاشرت نیک دلداری همدلی درسته این ها درسی ای هست که در همین چند کلمه رسول الله صلی اللہ علیه و سلم نفتاز سبحانکاللہ بحمدک سبحانکاللہ بحمدک سلاللہ محمدین و علیه محمد